بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا رسول الله الطيبين يا كلمات ایشان قرائنی رو که وجه بحجت خبر یا به تعبیر ایشون قطع مصداق زیاد هستند، به طور تفسیلی ذکر کردن که خب نافع مخصوصا اگر این معنای ایشان رو در نظر بگیریم که به تعبیر ما بیشتر معنای فهرستیه معنای مضمون سال و سازه یعنی به عبارت اون اخرا بیشتر می‌خواد قرائن و شواهد رو بر حجیت بودن خود خبر را نظر بگیره نه راوی از جای خود خبر شاهد اول روکان و راوی سقتن یعمن و منحل کس و عادتن وزاده که قرینتون علاسه علا سخت الحدیث به معنا سبوتی یکون سخت رو به معنی سبوتی درست کردن در کلمات مرحوم سال وسائل این مطلب آمده و این نیست سخت معنی حجیت حجیت غیر سبوته بله و کسی رن ما یه سرال علم مبذوله این مورد از علم در اینجا اصطلاح منطقی یا فلسفی یا که احتمال نهیز درش نباشه نیست مورد علم و عرفی است یعنی وضوح میاده راسته یه روز هم توضیح دادیم که عالبان و راوی منشأ بزرگ هست این درست این مطلبی شه و بعدیشون مطالبی رضوی مطالب فرموزه این خود خدا مراجبا نقطه نیست و ها امر همون وجدانی اون تساعده الاحادیث المتواتره فلعمر بالعمل به خبر السقه و نحی عن العمل به زن این مطالبی که ایشون فرمودن این رو به اصطلاح خود ایشان تا یک مقدارش رو اونم نمیشه بخمش رو توی همون جلد باب قضاوت قبردن که ما اینشالله در بحث خود, خود اون محضر رو میکنیم خلاصه این بحث این است که البته کردم ایشون استیاب نکردم باز مرموم آیه برو جلیت بلسته دویشان در مقدمات جماعه احادیس بابی رو قرار دادم برای خبر خبرباخه من چند بار ارز کردم مرموم صاحب وسائل تو بحث قضا اون عواقب اوائل تزار بحث بود چیز خبرواحد گفت اونجا آورده بلکه بحث تا هم اونجا بردن. در آن بحث فضا اما مضمونای برج جدی بحث بود چیز خبرواحد و تهاورد رو توی جام ال احادی در مقدمات آورده در جلد اول یه بابی رو قرار داده خاصه برای حججه خبر واحد و یه بابی هم برای تا ان شاء الله عرض توضیحاتش رو در اونجا و یه صحبتی هست که از کردم چند بارم ظاهر گفته باشم باشن مجموعه ی روایاتی که ما داریم به انارین مختلف و در عباب مختلف حتی ابواب طلاب و اینها و نکاح و توش تعبیر شده به سره امکانم قائل و ثقتن امکانم مخبر و ثقتن توش تعبیر به ثقه شده اینها زیاده مجموعه. از کنم مجموعه روایاتا به طور کامل در کتاب وسایل نیامده اگه آن وحکت کردن مثلا توی اون تعطیل تحتیل بخواه نظرهای کامپیوتر خیلی روایتی بیش از اون میخزاریست که در کتاب وسایل آمده من هم اشاره درن که زیاده انصافت مجموعه روایات زیاده که توی سره آمده در اقوام مختلف این که چون میفرماید تو ساهد و عهدیس و متوانترف بله عمره بله عمره به عمره بخورت این درسته روایات زیاد افواق متفرق هستن یک باب واحد هست خیلی روایاته یه روایاته که من دیروز پرید خوندم این دو تا روایت نصبتا مشهوره لاغوزه لعه دلم موالینات تشکیفی مایوی هم ناسخات که مرموم نایمی و حاکتا مرموم نایمی افیو نسفن و عبدالرحمن سرعتون این دو تا یکی عمل علامری و ابنهون سرعتان خص معله ما ورث اهم او ما فنه این فنه ما تعبیه این سه شمار تا روایت و مهم عیون در بحث وجبه خبر آوردهن لكن erkند روایات موردی خیلی زیاده خوب دقت بفرمایید روایت موردی و جمع نکردن اگه جمع بکنه انسان چند طرفه میشه از اول فقر تا آخر كل روایت حتی در تعبیر به ما تو روایات احوال متفرد زیاد داریم این مطلبی رو که ایشون قرأدن درسته لکی خب اصحاب ما با اون روایات خیلی توسوسو نکنیم چون مثلا موردیه ممکن در مورد خبر در چهجای خبر باشه مثلا اذان عارف مثلا و جیت داره اون موردیه اما اون که بیشتر در خصوص اون این سه چهار است حدیث نیست که آن خدمتون عرض کرده. قبل از نماز ظهر احوان به عالم یک اون رواد سقاطنا یک هم اون فیلمه ها سقاط الامیر سقاط المهمون به این سر چارتان بیشتر ذکر کرده. اون وقت بحثی دیگه ایشون باز مطرح فرمون و و من انه نسبت بین سقاط وله عرض حلقمون و خصوص و منوز بحث معروفیه که نسبت بین عرض در اسطلاح رجالی ها و سقاط آیا خصوص مطلقه یا خصوص منوزه خب به ازدهی معتقدم اون خصوص مطلقه چون سقه کسی که امامی باشه وقتی نجاشی این طور میگن هیچ طور با بحث بخش جاییه. کلمه سقه رو وقتی تحلیل میکنن میگن یعنی امامی باشه، عادل باشه، ضابط باشه یعنی منتفه باشه، دقت داشته باشه یعنی تفکتون به معنا داشته باشه قفلت نداشته باشه این مراد سه هست اما عدل نه مجرد ادالت حالا میخواد اون شه سالی که گفته شده داشته باشه یا نداشته باشه. در عدل امامی بودن و این که بر جاده شیعت باشه چون در بحث ادالت بحث معروف ایس گاهی ملکت یا نه ادهی از خود ها نه خودم ها مترخیرین بیشه از آن علامه بعد از آمدن مباحث فلسفی در اوزه هایی که علوم دینی خونده میشد بیشتر سعی کردن ادالت رو ملکه معنا بکنن اما خب در مقابل هم ایده متعدداً مد... نه و هم شدیدی نداری ممکن انسان یک لحظه بادر بشه عادل باشه لازم نیست ملکه باشه یا کیفیت نفسانی قاره باشه که ذاتاً زونه بشه این حرکت رو و لذا اگر دقت کرده باشید در مس مجمع و ن عارف این فعل این علی استقامات علا جازت چون اشون به ملکه نبودن ادالت رو همین که انسان گناه نکنه و رو انجام بده آنه میخواد به حد ملکه به اصطلاح فلسطبی برسه یا نرسه لازم نیست علی استقامات علا جازت شد این است برای عقل بودن اقل فرمونی؟ پس بنابراین این نسبت بین سقه و عقل یعنی سقه شامل ادالت میشه اما ادالت نه ممکنه باشه. نه دروغ نمیگه اما چی زابط نیست یعنی فرشین ایشون میتمند که نه به نظر ما صحیحش اینه که نسبت بین سر و عدل امون خسوم انوشه. یعنی در وثاقت مذهب لازم نیست دین لازم نیست ممکن بدین باشه ملحد باشه اما زابط باشه دروغ نگه و زابط باشه و در عدالت لازم نیست که حتما زابط باشه لازم این مقدار هست که دو بُرنگه پس نسبتش میشه اونم خصوصاً منبر روشن شد این یه بحثی که آیا نسبت بین عدل و سده ادالت و مساوات کدومی گرین ایشون میگه که معلومه انن نسبت عمومی خصوصون نرج روشن شد پس در کلمه سره که مثلا نجاشی داره توش امامی بوده نخاویده یه بخش رجالی هم هست که اون میگه چون جاش نیست اگر فرصد دیگه شد که اگر نجاشی در حقیقی تیزی گفت سقتان توش امامی بودن و ادالت هم قابله دروغ نگفتن هم دروز ادالته بسی بودن و ملتفض بودن و دقت داشتن این اداده است که در باب سقه در باب ادالت نیست بله و بله احادیث و المشاهله ها هم مثل مطلقه فی مایردیه سقه و یخکم به سهته البته ایشون می که این روایات مطلقه از کردم ایشون حالا تموزی برن رو روایتی که ما داریم این روایتی که ما داریم ادلهش در موارد خاصه مثلا زنی شوهرش گفتن طلاق شده امام اگر مخبر ثقه باشه مثلا موارد خاصه اطلاقی نداره که بحث روایت اینا رو بگیره موضوعات خارجی درطرف یه روایت زیادی هستند شاید یه وقتی که از بهاجر کردم بر من اردی تا 5 صفحه یا بیشتر خیلی زیاده بیگه از اون مقداری که اگر کم بکنیم توی ایام ترتیبیش ها قنون رسوات از در رفا سراغت الله سراغم ها جمع بشه خیلی زیاده اما اینا همه موردیه اون احادیسی که ایشون مخواد به شماس کنه اینه فه اینه و سر معموم ایشون بعد مخواد که این اطلاق داره سواء خودش راوی باشه یا راوی از یک مشهور باشه یا مرسل باشه انسان هایی اصلاه خیلی محل اشکاله واضحه یعنی هیچ جای ابهانه نداره ایشون میگه مطلق تیمایری حثفه و یکم به صحت ها مرسل ام مسند ان صحت اوغریف او مشهوده اینکه اسلام ما نداریم و ان شاء الله تعالی من عرض خواهم کرد این سه تا حدیثی رو که الان من خوندم هیچ کدونش رفتی به خبر سقه ندار اصلا اصلا از این آزنه این که به خبر سقه ندار اون دیروز عرض کردیم فی مایر وی همنا سقاطان همه وکلای مورد تایید ما مردی که وکلایی که ما قرار دادیم سقاط مرد وکیل اون فه این نمو امین هم به قرینه یه صحاف الامری و نمو سقاطان هم مرد به خالت همه این رواز عفیون سبون عبدالرحمن سقتون آخوان همه آلمدی مراد از وساقت در اینجا شبیه همون کلمه از خواب اجماعه ثقتون یعنی به اسلام مختب و مذهب فکری ایشان صحیحه سقه به اینجا به این مرم نه سقه در نقل حالا پس که مثلا یونس سبون عبدالرحمن یه حدیثی نقل بکنه که مثلا اقل لحی ثلاثت داریان این روش نی میگن آخ تربیر آقود رحمان, رحمان این به قرنه بعدیش پتا یونسف نظر رحمان سلطر کنیم پتا یونسف نظر رحمان سلطر کنیم آقود معالم دینی ده این ماله حبر واحد بکن مثلا درکیز و نفاش و تحارت و این نمیخوره آقود رحمان معالم دینی با اون چارچوب های کلی میخوره و چون یونسف نظر الرحمن ما ترم بوده که مثلا قائل به قیاس رعیه مراد این نشه این چارچوب صحیحه هفه. که من کلیات معالم کلیات دینه گفتم فارسی پس این که ایشون ایشون جابر که ها، هم فرمودن که مرحوم معلوم آیه ناینی هم به این حدیث تمسک کردن به این حدیث نمیشه تمسک کرد اونجا مراد از در اونجا چیز دیگه‌ای اصلا غیر حجت خبرث هست من عرض کردم اینا وقتی با خلق میشه باعث دقیقا محل نزاع واضح و روشن حالا یه این مطلب اولی رو که ایشون فرموزن جزبه قرائم حتی خوبیه من توضیح چند بار عرض کردم آن اخباری ها اصلا این راه که حجیت خبر سهی اصطلاحی به لحاظ رابی رو نرفتن بیشتر رفتن رو صحت روایات چون رفتن رو صحت روایات نیاز به تکیمی شواهد داره خوده بس اگر می رفتن روی حجیت راوی سقه خبر راوی سقه بگیم نیاز به تجمیع شواهد نبود لذا در این فصل ایشون تجمیع شواهد کرده این که راوی سقه باشه یکی از شواهد برازه حضب خوبیه ما هم این معنا رو قبول داریم خیلی نزدیکی مزید لحاظ بایشان در اینجه هم و در مقابل این رسه مرمو استاد که نه اصلا خبر سقه رو به عنوان پیش و خبر فرموندید خبر سقه رو به خاطر این که وساقت موجب زن میشه و یه کاشفیتی داره ایشون اعتقاد دارن که اقلا با عمل به خبر سقه اون کاشفیت رو کرده کردن حضر مبارکیشان ما این مطالب رو در اول مباحث و جیت مفصل متعرض شدیم تکرار نمیکنیم. اجازه اشاره ایجمالیش اینه که مثل مرموم استاد، مثل مرموم آغزیا مثل مرموم نایینی اینا اصولاً زیر بلای تفکرشون اینه که حجیت و دارمدار دا کاشفیت میدونن. این مواحس اصولی یا باید حقوقی بسیار جای توجهه. اینا اعتقادشون اینه که حجیت دارمدار دا کاشفیته. لذا اگر کاشف تام بود یه حجیت تامه. اینجای بحث داره. اون نکته اصلی زیرا بنابیه فکر رو فکر بکنیم اون نقطه اصلی حجیت رو کاشفیت میدونن مثل تبکرشون دیمون نقطه اصلی که یک چیزی حجت میشه کاشفه و چون کاشفیت قرص رو ذاتی میدونن و تام میدونن حالا به طبیر مرموم آزیات تنجیزی میدونن یعنی یک کاشف تام میست متوقف به چیزی تنجیزی بیر بنا حجیتش هم تام حجیتش هم تنجیزیه اما مثل خبر سخیل چون کاشف ناقص میدونن کاشف میدونن خب به مقداری که کاشف ناقصه حجیت داره چون حجیت تابع کاشفیت لیکن چون ناقصه احتیاج به تطمیم داره لذا آزیادش تعدیم میکنه که حجیت در مثل خبر سخه حجیت تعلیغی نه تنجیدی یه از تعلیغات آزیان مشکل نداره تعلیق حالا تام و ناقص مثلا تعدیم پس نقطه اساسی بحث اینجاست اون نقطه روح بحث حجیت و حضرات از توابع کاشفیت میذارن لازمه کاشفیت میذارن در جایی که کاشف تام باشه حجیتش هم تامه یا به تعبیر مشهورشون ذاتیه اما اگر کاشف ناقص باشه حجیت جعلیه ولی مرحوم نائینی تعبیر میکنه حجیت جعلی و حجیت منجعله جعلیه منجعله اون چه علین داد؟ جالیا مساجد خبر فکر اصطلاحیشان اینا مجرد اصطلاحات خیال دنبال اصطلاحات فکر نکنیم بیشتر به خود مطلب فکر ما در مبحث هوچیت مفصل متعرض شدیم که اولاً هوچیت یک پدیده اجتماعی است یک مظهر اجتماعی است چیزی نیست که فی نفسه باشه و نظام معیار در بوچیت رو از کاشفیت خارج کردیم کاشفیت رو زمینه هوچیت گرفتیم نه تمام حجیه واقع حجیه در که اون چی که منشأ حجیه از میشه حفظ ارتباطات اجتماعی و نظام اجتماعی از. اون منشأ حجیه است لذا لزان خارج بین حجیه خبر ثقه از یک طرف با حجیه قول قاضی نمی‌کنه اونا حجیه قول قاضی رو به لحاظ کاشف نمی گیرن به لحاظ مصلحت اجتماعی که رفت خلاف باشه چرا قول قاضی حجتشه چون رفع خلاف می‌کنه شون اگر بنا بشه بگیم قول قاضی حجت نیست تا من حسوخ خدا کنم خب باز دعوا قراره قاضی رو حکم کنم آب نفع یک کرف طرف, طرف دیگم آب نفع یک کرف کنم این چیه باز قاضی نفع یک کرف کنم اون طبی من حسوخ خدا نفع اگه این بشه رفع خلاف نمیشه برای اینکه که رفع خلاف و رفع نزاب توی جامعه بشه بر رفع نزاع، بخنم آب قاضی هرچی این هم دیگه که یه من اصول پیدا میشه اصول قرد پیدا میکنم نمی کنم. ما دنبال این حالات فردی شما نیستیم برشنش شد ما حرفمون اینه که در حجر خبرزده هم همینطوره حجر قطع هم همینطوره ما اصلا حجیت ذاتی رو قائل نشه بود این مسلکی رو که مرموم آیه صاحب وسایل رفته اجمالا با روایات شیعه میخوره مسلکی ایشان روح حجیت خود روایات رفته و تجمیع شواهد برای حجیت روایات نه تعبد به خبر سفر، به راوی و لذاریشون ارز در اینجا حدود 21 قرینه رو ذکر کرده به خلاف مسلک مقرومه استاد استاد اصلا وساقت راوی رو میعیار حجی چون وساقت یک مقدار کاشفیت که داره قطعه حالا گاه که کاشف تام هم هست راوی سرابی بقیهش هم میگه اغلاق قبول کده ایشون مئیار حجیت رو از راه دیگه ای رفتن و لذا حجیت خبر رو به لحاظ حال راوی دیدن نه به لحاظ محلحت اجتماعی مثل باب قضاوت خوب دکن بکنیم اینا هره زیر بنایه اصولی داره. حجیت خبر سقه پیش مرمون استاد از نیست. در باب قضاوت حجیت به خاطر اگه امر خارجی است، نه قول قاضیفی نفسه. امر خارجی رفت نظام. حفظ جامعه. اما در باب حجیت خبر سقه ایشون منشأ حجیت رو خود مساقت میدونن. نه امر خارجی. چون مساقت غالباً کاشفیت داره، خود این رو من شعر می‌دونم دقیق فرمودید بعد از اینکه به اصطلاح ما هارو وارد بحث عجیل خبر بشیم هی بعضی از نکات رو تکرار می‌کنیم چون خیلی تاثیر داره در تحلیل اصولی و تحلیل قانونی که اونقدر از این مسائل ارائه بکنیم فی ما بعد ان شاهد دوم قرنه دوم کانون حدیث موجودم فی کتاب المنکوته بر اصول المجمع علیها حالا على این کلمه اصول اکتفا را یک خیلی المشمری علیها داره او فیکر کتاب عهد شقات این که از اصول مشمر علیها به تعبیر شما منظور مرادشون از مشمر علیها چیه چون طالب میگه اصل خودش معتبره چون من تازگی این بحث رو مطرح کردم که اصل کلمه اصل در بین قدماهای اصحاب ما خیلی وازه به نیست که مرادشون چیه یک معناش معناش اینکه این معتبره یک معناش این که نه این مثلا فقط روایت کلام راوی نیست اگر معنای اول باشه بله که از قرآن تعییده اگر معنای دوم باشه نه بله اصول مجمع علیه ها یعنی کتبی که بین اصحاب تلقیه به قبول شده و مورد قبول بوده مثلا کتب سلاسین حسین سعید کتب حسین محبوب کتب حریز بن عبدالله زیجستانی کتب مثلا موسبد خاسم بگر من با مثال اگر ثابت بشه که این کتاب های بوده که اصحاب قبول کردن نقل کردن کسی رزش نرد کردن این که مرگوم نجاشی راهگاه که بگه کتاب رواه جماعات من از حابنا یا میگه رواه خود جماعات منه ما به ذهن بنده آمود اصلا نهیدم از آیا. هم به ذهن بنده آمود اگه به این دوتا عباره سر رو بگذاریم جماعات منه از حابنا یا مثلا کتابون مشهور. این در این حال اشاراتی از نجاشی که از اشترا برد ارزیم پیش ها مثلا ایشون مجموعه علیه ها مناگرده علایه این مطلب که در یک کتابی باشه حالا ایشون تعبیرش در اصول باشه بله و اینطور که ایشون غرموزن یا به تعبیر من یه تعبیر دیگری داریم. ما گاهی اوقات روایت رو که نگاه میکنیم به خاطر همون سنر رو که نگاه میکنیم سیر تاریخی حدیث رو میفهمیم یعنی دقیقا مطلعیم که در چه کتاب بوده چی جور شده چطور به دست این آقا رو درسیده حالا شاید از عبارت همین بود آلا نستمیست گاهی اوقات ما حدیث داریم صحیح هم هست اما سیر تاریخیش رو نیمتونیم تشری اینجا البته بعضی از رموز و هست که نمیخوام بگم چون خیلی دقیق و دریفه فلانی نمیخوام خیلی باز این نقطه رو بکنن و که این اجماع مثلا پس که ما ما علی ابن من عبیان ابن پس برن نوفلی عنه سکونی که این ایام بحثه این تقریبا پیش ما سیر تاریخیش واضحه کتاب در به بنام کتاب سکونی ابرازن هاشمی رو به قوم امرده یوشتاش تو افتاده این که ها اما داریم باز احادیث دیگری که سنده صحیحه که اونا رو الان نمیخوام بگن لکن سیر تاریخیش رو نمیتونیم بفهمیم این بگه شاید مرادش این باشه وقتی در یک کتاب بود این بیشتر رسولاسته یکی از قرائنه وصوب اینه این یک دو کتاب ها و یک نقطه پس این که ما به اصطلاح بنده سیر تاریخی حدیث رو بفهمیم دو ما شواهدی در درست داشته باشیم که این سند از کتابه این سند دیگه معلوم نیست از کتاب باشه این دو تا سند رو با هم فرق پر... اصلا معلومه ایشون نفرم مطلب رو معلومه به برزا شیخ خور این هم مطلب صحیحیه لذا ما کرارا از کردیم اگر نوفلی از سکتونی نهارو بکنه مثلا اینو هاشون نوفلی سکتونی واضحه که از کتاب سکتونیه فقط وازلید اما اگر مثلا شخص دیگه مثلا فضالته دعیب اثر کنه روی نور بکنه نمی‌دونم این از کتاب سکونی است شامل لوازم شفایی باشه شواله مثلا از کتاب سکونی که نگاه کرده از مجموعه مثلا 1500 تا حدیثش دو تاش سه تاش چه تاش یا پسندیده با شواهر یا با قرائن یا با به سمواسه با دیگران اینا رو انتخاب کرده ما خیلی دقیق وضع این رو رو نمیدونیم پس بیاییم این رو یه شاهد بگیریم این هم حرف خوبیه این حرف فی نفسه این شما در کلال مبارس آینده من راجع به این بیشتر صحبت میکنم پس یه مطلبی از این مطلبی ایشان این باشه که ما بدانیم از به اصطلاح سیر تاریشیش رو بدونیم دو بدانیم از کتاب این جزی از کتاب یا نه از کتابی ما الان روایاتی از امار ساباتی داریم نمیدونیم واقعا از کتابش ام اما روایاتی هم مثلا در تحریب داریم که مرحوم صاحب نوادر و حکمه این طوری کنه احمد ابن حسن این پسر ابن فضاله این مصدر ابن صدره امر ابن سعیر این امار ساباتی این واضح کتاب امار ساباتی خیلی واضحه و ای کاش این کتاب در اختیارم بود چون اگر در اختیار ما بود احتمالاً بعضی از این برداشت های ما عوض می‌شد ما الان از این کتاب در دو سه جای کتب حدیث یه نقل یک صفحه‌ای داریم یک صفحه اصبه خردی کار دارم نقل را که نگاه می‌کنم می‌فهمم کتابی می‌ذاری حالت خاص خودش داره پس بنابراین این مطلبی رو که مربوط به شکر پر ما فرق بگذاریم بین روایات و بین کتاب این دو تا رو بعد فراهم سري. و این بحث خوبیه. الان تا الان که من در خدمت هستم نهیدم اصحاب ماشه در وراسر جالی چه در وراسر حدیث شناسی البته از در از زمانی که اخباری ها منابشاتشون شروع کردن اجمالا مطرح شده مثلا مرحوم های مجلسی مجسی پدر در مواردی در همین شرح من لاینظور مرشود دیدن مثلا سحلب بن زیاد انرشاه میگه سن مهمش کتاب بشراره سهر طریقه ولذا زعف ایشان مزر نیست بفرک کردید اینکه که سهر طریقه است. این مطلب اجمالا مطلب دقیقیه شرح و توضیح بیشتری میخواد که اینشالا در خلال بحث‌های آینده ارز کنم. بیش و من ها کنم من این قرائل ایشان رو شماره گذاری کردم حضرت آخر شرکیم و غیر ازاله که بینر اما اون تمره شماره گذاری که من کردم 21 شماره ایشون 21 قرین ذکر ک. کانون حدیث موجود در کتب و اربعه ها نهوها من در کتب المتواتره اتفاقا المشهود لها بصحه. دیگر البته این مطلب ایشان بین ی حرفی فرضیات بین المتواتره اتفاقا المشهود لها بصحه. کتور عرقه متواصر هست به این معنا که معزم این کتاب چون هر کتابش چند تا حدیث مشکوک داره معزم این کتاب مشهور و متواصر و نسخ فراوان داره من همین وقت اخیران اینجای نگاه میکردم در این کتاب خانه مرموهای مرعش قدس الله سره، به نظر فقط از تحذیب تنها هشتاد نسخه نشتو هشتاد نسخه که بلی که واقعا نفیزه این کتاب خانه ایشان داره. از تقریب بسر حالا کتاب خانه نجر مرمو ها حکیم دیگر هم دقیقه از کتاب مراد از متواتره به این معنا نسخه این کتاب خیلی زیاده اگر شما اجازه نداشتی میتونی اتفاق کنه مراد این پس مراد از تباتر این اما المشهود لحاب سهش دیگه این که این نسخه ثابته ای یک مثل به این, این کتاب سریعه مثلا به دیگره مردمه اشیخ مرحوم محور ظاهراته به حال صحو یا اندر اون مساله اول یک چیزه مثلا کتاب خطائصی از منصوب به اختصاص منسوب به شیخ مفیدی ادعا مصادق ثابت نیست مرحوم استاد استادن که این کتاب ثابت نیست شیخ هم که ما شیخ مفیدی باشه ادعا اینه که این مال شیخ مفیدی این میشه که متواثر نیست اما امالی ایشان امالی شیخ مفید شیخ طوسی امالیه اینا متواتره این مطلب ایشان اجمالم مطلب درستیه و که کردم این عنوان موجودن فلی کتب و نه و همون الکتب المتواتره این خیلی عنوان دقیق علمی نیست سه قسمی کنیم مثلا همین کتب کافی بر اساس اختیار نوشته شده اشتباه نشه گزینشیه. یعنی کافی احادیسی رو که قبول با برده دقت میکنه ولی شما نگاه این سندش ضعیفه به ضعف صرف نگاه نکنید. از دارم به استثنای کتاب روزه کافی و به استثنای اون جایی که در کافی میگه باب الناظر یا باب النوادر به استثنای این دو مورد اون چی که در کافی آمده ایشون قبول داره. فقيه هم کتاب القدینش اشتباه نشه. البته دو مقنی فقیه هر دو تو قم نوشته شده هم فقيه تو قم نوشته, نوشته شده هم کافی کسی که در زمان ما درقومی که مثلا مسئله اخرویش بشه که اصولی قرار با دو تا مثلک این در کتاب در قم نوشته شده‌اند یکی ای کتاب کافی یکی ای کتاب اما کتاب تحریر و استفسار گزینشی نیستند نه تحریر گزینشی است نه استفسار کردیم لذا ارزیابی 4 تا کتاب رو یک نرد گفتن درست نیست در کتاب شیخ صدوق فضیق داره یک ارزشه الا لو شرایع ارزش دیگری داره دیگه یک نفس بده دل حاضر نسخ شناسی درسته انارو شورای مشهور ما اجازه هم نداشته باشیم کتاب فوق اجازه نسخه دقیق فهمیدی نسخه فراوان و متواتر یک چیزه این که کل روایت کتاب المحفوظ لها به صحت مطلب دیگری که صحیح نیست و منها بعد شر از اینکه روشن و اما و منها كون و منقولا من کتاب احد من اصحاب الاجماع انسان واحد باهغه از اصحاب اجماع بله و ی علماء که به تتبع و قرائن و تصویح شیخ و غیری راست پیدا کردنش سخت هست اما اینطور نیست که دائما آسان باشه چرا راه را این مطلبی که ایشون شو شوی. از راه شیخ بهتر میشه شراح کتب اصحاب اجماع بلکه من عرض کردم اون چیزی که در باب اصحاب اجماع راجع به روایت نیست راجع به یکی از شوالده قریش اینه که اصلا مثل خود زراره رو مثل نجاشی کتاب در فخر بیشون نسبت نداده کتاب روایت بیشون نسبت نداده البته مرحوم شیخ یک سند ضعیفی بیشون ایشان مصنفاتی نسبت داده من ها کتاب منفلتسائه که اون سند هم باطل و صحیحی نیست علایکی دماخان این خود شاهد است که مراد از اصحاب اجماع اصحاب کتب نیست و من ها کان و بعضی رواتی من اصحاب الاجماع وقت سحه انها مطلقا این مطلقا تفسیر کرده به معنی انهو ثبت نقل و حوله من انیقون مرسر انها اومست ندن این مطلب سابقا گذشت خود ایشون جز قرائن عامه اوبرده بودن و از این قرینهی ای که ایشون فرموندن درست نیست البته اصحاب اش ما جبور و قرد هستن با که امتدارن من توضیحاتش سابقا گذاشت یک تکرار نمی کنم تفاوتی هم بینشون هست انصافاً ازدهشان توضوی هست اما فرصوی وجود اصحاب اجماع حالا بعدیش مرسل باشه یا مستد باشه فرق میکنه مثلا اصحاب اجماع باشه با غیر اصحاب اجماع ممکنه 20 درصد در تا 30 درصد در وصوغ رو بالا ببره اما این که اصحاب اجماع نرم درصد در وصوغ بیاده نه این واقعیت هست و منها کرده رو به روایات بعض جماعه در دین و مدر به رجوع الهیم وله عمل به روایاته این هم من کلام دیگه تکرار نمی کن. و منها کونهو موافقاً دلقرآن این شبه تو بحث حجیت خبر سقه حرف میکنیم یکی از مکاتبی که در بین اصحاب ما از همون قرن دو غم شد موافقت با کتاب و سنت حالا ایشون کونهو موافقاً دلقرآن رو قریمه گرفته اما در روایات ما مجموعاً سه دو جنوی دیگه هم هست غیر از قریمیت که ایشون گفتن یک موافقت با کتاب مقوم حجیته خوب دفت رو کنه. یعنی اگر موافقه با کتاب نارستان حجت نیست نهی که شاید باشی پس یک موافقت کتاب جز مقدمات مقومات حجیت این تو بزر روایات ما هست و این شورا توضیحه در بحث روایات متعرض میشیم دو در بعضی از روایات ما هست که جزر مرجحات خودجیت در باب تا آراز. و اگر ذهن مباردون باشه در کتاب کفایه طائقه دوم رو به اول ارجاع میده میگه این روایاتی هم که آمده از کتاب جزء مرجحاته مراد همون مقبلمات خودجیت موافقت با کتاب جزوی مغزماتی یعنی اصلا موافق کتاب هجته ایر موافق کتاب هجت میدید اصلا حجیت لاحجیت بقید فرمودید در کتاب رو کفایه ترجیح به موافق کتاب رو هم ارجاع داده به تقویم مقدم بوده. اما اینجا مرموم سال و ساله جز قرائم گرفته پس این بحث موافقت با کتاب یه بحث سنگیریه این در محل خودش عرض میکنیم از این بحث پنگین تر معنای این عبارت از موافع محطت ها اگر ما باشیم و ظاهر یعنی این مضمون را تو قرآن باشه خب که این همه رو واضحیم بیمیت مضمونه لذایشون آمده و مراد ال آیات و الواضحت و معلوم تفسیرها ها انهم علیه این همون نقطهی است که ما سابقا هم وقتی عبارت اینه مطلب رو مرحوم ملا محمد امین استرابادی خوندیم. از فوائد مدنیه ایشون که ایشون میگه حتی آیات کتاب هم باید با تفسیر اهل بیت باشه سنت هم باید با تفسیر اهل بیت باشه چه رقایاتی که مطابق با کتابه و اون خود کتاب هم فهمش باید با تفسیر با رقایات سنت هم با رقایات که این توضیحات رو اینشالله به نحو واضح تری بعضها ازهایی کرد اونی که الان من میتونم در اینجا اجمالاً عرض بکنم ظاهرا مراد کسانی که دنبال این م بودن م Thلک و مقابل مثل مرحوم یونس بن عبدالرحمن ب یه عبارات کلینی هم مشعره چون در کتاب الذار باب العقل و شواهد کتاب السنه باب شواهد کتاب السنه اگر ما این معنا را قبول بکنیم از مجموعه کلمات اون بزرگان اینجور معنی میشه مراد موافقت مضمونی موافقت با روح قرآن نه موافقت نصی با نص قرآن با آیه ای اداره یعنی با اون روح خاصی و با یه روایتی بیاد که فرض کنید در در ازریان مثل مرشد میشن این با روح قرآن که تلازم اعماله می ساده مراد اینه. اون روح قرآنی نه مراد موافقت نصی با کتاب بگم که آیه میشه یه جور در مراد همون حالت مضمونی و روح قرآن مراد اون باشه و منها کون او موافقا لسنه کالان توضیحش ارزش کردن ان شاء این توضیح بیشتر بعد میاد و منها کون او مکرر فی کتب متعدده معتمد که مثلا در کافی از در تهذیب از در استصاره هست در ال شرایع در ایده از کتب هست ایشون به این مناسبت این قرینه یه نکته ای در باره کتاب خودشم داره صاحب صاحب. این نکته خوبه چون من چند بارت حالا این مطلب رو گفتم اعتراضم کردیم اعتراض اعتراز برست که صاحب وسای خیلی جهاز استقرار نمی‌کنه کنه اصلا ایشون میگون به کتاب واضح از کتاب و نوازه رو احمد اشعری مراجعه کرده همه جا رو نواظر نمیاره ایشون اینجا خود شرح میده این مطلب رو اولا ایشون میگه با حاضر غیاب قرینه موجود فی احادیث در کتاب اولا ما در وسائع این کتاب ما روایات ما معتبره چون در بیشتر از یک مصدره و نبی لم نر کو من تکرر حاصل خودشون خود ایشون میگه بعض از این حدیث در دو سه است و نقل نکردن من گفتم ان میشه اشقال هست ایشون ملتفت بودن خودشون اکثر مما ذکرند لعن نه اکثرها و کلا ها نه اکثرها مروی از این کسیده شاید مرادشون کسیده مثلا تحفیه بوده استفسار بوده بعد مثلا کتاب علامه بوده کتاب محقق بوده مراد اینه کتب روایی کسیده نیسته نه قدنبهن با... ها و باقی. و لذایشون اسم و خصوصا تفسیر ایاشی فه این نفی احادیث کسیر از این جدن لا توحصا اده قدنقلنا ها من غیری این واضحه بود من چندبار بار از کردم که این روایت در مسادر بیام هر ثوابثا نیورده ایشون خودش توضیح میده که بله من نیوردم هم در نیوردم ولن نشر الوجود هافی و کذالک مناقب ابن شهر آشوب و کذالک نهرو این نوادر رو چندبار بار خود من دویه کردم که هریز در نوادر هست و مرحوم ثوابثا نیورده و کذا نوادر احمد بن محمد بن عیسی و کذا روزه الواعظی البته این روزه الواعظی ها مصادر تولیان داره توش احادیث مرسلیگاهی داره که در مسادر قبلی نیست و الان غالباً مسادر چولیه و الله علیه و محمد و الطاهرین